ای خوش پسر قمزگر رنگامیز، بنچین و هزار، فتنه بنشان و مخیز، تو حکم همی کنی که در من منگر، این حکم چنان بود که کجدار و مریض. با تو به خرابات اگر گویم راز، بهزان که کنم بی تو به مهراب نماز، ای اول و آخره همه خرقان تو، خواهی تو مرا به خواهی بنواز با مردم پارک باز عاقل آمیز از نام هزار هشتم گریز اگر دهد تو را بنوش و نوش دهد دست ناهل بریز بازی با پریده پرید از عالم راز تا بوک رسم من از نشیبی به فراز اینجا چون نیافتم کسی محرم راز زاندر که در آمدم برون رفتم باز